بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المختارين وآل وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله وأسكنوا فسيح جناته فأركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق إلا الله لا إله نافيا جميعا ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه ما دیشتر فقط قسمتی رو گفتیم از این آیه جا گواه خداوند بر وحدانیتش اینی که خداوند گواه میده به اینکه که معبودی نیست به حق پرسیده بشه جز خودش اینچنین مؤلف تفسیر میکنه کلمه شهادت کلمه, کلمه شهادت الله لا اله الا الله شهد الله انه لا اله الا هو قسمتی از شهادت این هست شهادت ان لا اله الا هو شهادت ان محمد رسول الله دو شهادته إن قسمت شهداته اولئي رات ومعناها لا معبودة بحق ان الله. چنين تفسير ميخونن؟ لا خوة المتدن در الفيديو من المؤلك ميخونن عمل إن اجعل للا في ناكرا خوة المتدن لا همون عمل إن را أنجام لا همون عمل إن را و لا بايت جواب داشت باشه همون ترك إن را بهت جواب داشته باشه عمل إن اجعل للا في نكره. مکره اینجا چی باید باشه؟ چه چی چیزی باید بیاد اینجا؟ چه خبری باید لا داشته باشه؟ خب ما گفتیم جلسه گذشته توضیحی این قضیه رو دادیم. باید اینجا ما باید آیه را کنار هم دیگه بذاریم که این اله به چه معنا؟ اله اینجا میگه. خب این اله به چه معنا هست؟ این اله به چه معنا هست؟ این اله به معنای رب به معنای خالق به معنای موجود یا به معنای معبود این الاه چیه؟ منظور از این اله چیه ما گفتیم استدلال کردیم به فرموده خداوند از اون چیزی که در سوره مؤمنون داریم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله یا قوم ما لكم من اله غيره ای قوم عبادت خدا بکنید جز اله اله یک تا کسی دیگر ندارید اون الهی که باید پرستیده بشه پس اله معبودی که فر یا قوم اعبدوا الله اله کسی که پرستیده بشه هر کسی که پرستیده بشه بهش گفت میشه اله معبود ما آیات زیاد داریم در این قضیه که این قضیه نفی و اثبات اینچنینی که مؤلف میگه درش باشه اینجا میگه لا اله الاه نفی است نافیا جمعه ما یعبد الا الله مثبت نفی و اثبات با هم جمع شده نه که تنها خدا بیاد خودش علوهیت خودش ثابت بکنه والا ما میگه نفی وقتی که بیاد به همراهش اثبات یا حصر بیاد ادا اله هم گفتیم میشه هم اداه حصر هم اداه استثناء دلالت بر چی میده؟ دلالت بر تکی میده. دلالت بر انفراد میده. یعنی خداون فقط منفرد به این خصوصیت. دیگه کسی دیگه باهاش شریک نیست. حالا چی چیزی هست خدا داره و کسی دیگه باهاش شریک نیست اون چیزی که دلالت خود قرآنه و دلالت لغت عربه اینی که الان طبق لغت عرب معبوده مثلا فيروزابادي و همنين جوهري در کتاب الصحاحش از لغوي هاي متقدمين اگر ما بخوام بگیریم از كتاباي ب قدیم قديم بر بگرديم مثل كتاب الصحاح يا كتاب فيروزابادي كتاب معجمش میگه الها الهه و اولوه و اولوهه و اولوهيه عابد را به معناي عبادت گرفته یعنی اينجا لا اله ای لا معبود اینجا معبود اله معبوده طبق لغت عرب يعني یعنی در لغت عرب اله به معنی رب نمیاد رب یک معانی دیگه داره رب از تربیت میاد از پرورش میاد رب یک معنی داره اله یک معنی دیگه داره خود اله یعنی اگر ما به ریشش نگاه میکنیم ریشش بر میگرده به آن چیزی که عبادت بشه عبد عبادتا خود عبادتن میدوندی اون چیزی که تعلیح بشه عبادت تعلیح با تعظیم و محبت تعظیم یعنی اون یک چیزی که مثلا ما تعظیمش میکنیم یعنی به اله و, اله و میرسونیم تعظیمش میکنیم همراه با حب نسبت به اون همونطور که خداوند من ان هم این هم کنی و و يدعوننا رغبا و رهبا يدعوننا دعام كذا راغب که هم محبته اسباب رحمت خودشون خودشون دوست دارن که عبادت بکنن رغبا و رهبا رهبا ترس پس این دوتا چیز در عبادت هست ترس از خداوند و محبت خداوند عبادت اصلش اینه یعنی خضوع, خضوع به خداوند یعنی پیروی و تسلیم شدن به اوامر الهی در همراه با تعظیم و همراه با محبت یعنی این دوتا شرط هست اصل کلمه الوهیت این یک چیزی تعلیحش بکنی یعنی بزرگ داشتش بکنی همراه با این ازش بترسی و محبتش داشته باشی این تعلیه، تعلیح قلبی یک چیزی را در قلب خودت بزرگ پنداشتی این الهه با چی یک شخص بزرگ میشه با تعظیمش با سجده به اون اظهار زلت در کنار او همونطور که در معنای عبادت میاد اصل کلمه عبادت در لغت اظهار زلت اظهار کوچکی هست افتقار اظهار کمی هست در مقابل خداوند این بندگی هست این اصل الوهیت اصل الوهیت اظهار بندگی بکنی بندگی رو نسبت به خدا ثابت بکنی به خاطر همین خداوند نیومده نیمده در قرآن اصل وجود آله ها را نفت بکنه آله ها بودن این از طرف مخلوقات کسان زیادی پرسیده میشه شد های زیادی کسانی پرسیده می شدن شود. یعنی این چیزی که مشتکین دردنشون بحثش، بحثشو خواهی میکرد مثلا خدا وقت در قرآن که فما اغنت عنهم آلهتهم فما اغنت عنهم یعنی به دردشو نخور آله هاشون یعنی اونهایی که چی؟ می پرسیدن اله،, اله،, اله داشتن برای خودشون ولی که به دردشون هم اله داشتن یعنی, یعنی معبودات داشتن کسانی که از اونها می تلبیدن دعا می ازشون می خواستن طلبشون ازش می خواستن خب این چیلین میاد با توجه به آیات قرآن مؤلف میاد تلمه لا اله را اینجوری تفسیر میکنه کنه لا معبوده بعدم این معبود را با این خبر که مقدر در ذهن این که معبود به حق یعنی هیچ معبود به حق نیست چون نف نفی معبودات نیست چون معبودات دیگر به این آیه بودن فما اغنت انهم آلهته هم آله ها بودن یعنی خدایان بودن ولی که خدای به حق نیست جز کی؟ جز یکی جز خدا بنده یک تا به الله هو الحق مقاطب همین باید گفته بشه خبر الله معبود به حق یا معبود حقه معبود حق یا معبود بحق. حق یعنی کسی نیست که به حق پرستیده بشه عبادت بشه جز خدابند یکتار چون معبودات ذلك بان الله هو الحق و انما یدعونه اون کسانی که ازشون میتلاویدن میپرستیدن میدونی هو الباطل باطلا غیر از خدابند باطله پس اینجا تبقی این آیات قرآن چنین تفسیر میشه حال ما چه جوابی داریم بر کسانکی که اومدن این کلمه توحید کلمه لا اله الا الله که تمامی پیغمبران به این کلمه فرستاده شدند از نوح گرفته شعيب گرفته که گفتيم که خداوند قصه‌شون نقل میکنه لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله و آیات ترام داریم خواستم داریم عامه که لقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واشركوا الطاغوت ناس با اثبات ان اعبدوا الله واشركوا الطاغوت اث... نفی ان اعبدوا الله اثبات واشركوا الطاغوت نفیه. این نفیو اثبات. لا اله الا الله. این برعكسش اینجا. اولش نفی میاد بعد اثبات میاد. در تمامی آیات توسعه برای اینکه اثبات کمال بشه. یعنی که خداوند که فقط به حق رسیده دیگه بیشه نه با اثبات میاد که کمال اون عبودیت برای خدا صافت بشه. و نه بشه هر چیزی که پرستی میشه به خدا ماندی یکتا. همچینی و بعد ارسال نما رسول الله لا إله إلا انا فعبودون. نه با اثبات لا إله الا انا تمامی پس چه به بطور عام اگر ما در نظر بگیریم؟ این کلمه توش الله ال جعات بر عبادات داره طور عامش و چه طور خاصش دردع دا پیانبران؟ آا کسانی که اومدن یک مفهوم دیگری رو بر کلمه الله بذاشتن. دز... الله مثلا سنوسی در ام البراهیم میگه از اشعاره. از اشعاره هست هستگه ف الله هو المستعم عما المفتق و الليه كل معلهه. اللهه کسی که بندگان بهش نیاز دارن به اون کسی هست که غنی هست. فالاله هو المستغني عن ما سواه، المفتقر إليه كل ما عدا. يعني همهت نیازمند اش هست. همه کس نیازمند اش هست، نیازمند کیه؟ نیازمند چه معنی را دربر می گیرین این تعریف؟ معنای ربوبیت. حالا بعديها اینجنین میگن، مثلا معتزله میگن لا صانع الا الله. هیچ صانعی نیست. این میخوان معنی لا خالقه الا الله، اینجنین کلمه توحید را تفسیر میکنن. هیچ خالقی جز الله نیست. یعنی خالق فقط یکی هست. لا خالق الا الله اثبات وجود یعنی هیچ خالق جز الله نیست آیا مشرکین در این قضیه مشکل داشتند در این قضیه مثلا ابو جهل ابو لهب دیگران عصران او قرش خداوند در قرآن نه یک آیه نه دعای چندین آیه ما داریم ولا انسئل من خلق السماوات والارض لا قولون الله میگن انہوںو میگن خدا بیا لا قولون یعنی میگن حقیقتا میگن کی الله ولا إن سألتهم ولا إن سألتهم أجر ببورس لمن ما في السماوات والأرض ولا إن من خلق السماوات والأرض كي أصنعه زين خالق كي الله الله خالقه بس انها إقرار داشان مشركين إقرار داشان خداصانع خداص خالقه إن كلمة بدال دشون إن كلمة توشين إن إن كلمة خدا بأن خالقه بدال بعدها على حقيقه ان ان لا اله الله يا رب لا رب إلا الله حتى كاظه اللغوي هم گفتيم قبلا اشاره من ابتدائيه هم لغتم كو متشون نميكنه چون لا اله اله معبود هم ده كه ده كتبه لغتم ميخونيم اله الهه و اولوهيه و اولوهه اي عبد عبادته الان از الحاضر لغتی هم کمتشون نمی هر قدیه که ما از قرآن هم دلیل وردیم که در قرآن کلمه اله معنای معبود به کار برده شده در و در ازای کلمه توشی دستور پرستش لا اله الا ایلا انا فاعبدون دستور پرستش داریم شده این چیز واضحی هست در قرآن یعنی نه یک جا نه دو جا چندین جا در قرآن تکرار میشه مثلا بالفرس الف لام را کتاب احکمت آیاتو ثم فصلت ملد الحكيم الخبير ملد حكيم خبير ان لا تعبد الله ان جزيك خواسته که که پیامبران نخب به بشریت چیه إلا الله تعبد الله جزء الله کلمه کلمه لا اله الا الله هست نه بعد میگن که بله این کلمه وهابی ها یا کار محمد دوابه کار ابن تیمیه هست نه ابن تیمی از جیب خودش رو ورده نه محمد وهاب کاری به نداریم شما برید کلمه اولوهیت و کلمه اولوهه کلمه اولوه را بزنید سرچ میکنید در کتاب تفسیر تبری که در قرن سوم و چهارم نوشته شده بیش از سد و موضع شما دارید که از این کلمه اولوهیت بکار میبرید و کلمه اولوهه یعنی این دو طرف با هم دیگه مختلف میکنه روبوبیه و اولوهی یعنی این دو تا توحید رو با هم منتبری مختلف میکنه نه یه جا گفتن بیش از 100 موزه. یعنی همیشه میگه میگه در معنای کلمه توشید کلمه لا اله الا الله، می‌گه در به الوهیته، به تعظیم خداوند با پرستشه چون لازمه یه اینه که اقرار داشته باشه به اینکه خداوند خالقه. ولی اگر شما بگید خدا لا, لا اله خالق الا الله، لازمش این نیست که نفی معبودات دیگر را بکنی. حالا مثلا بفرض من بگم جس خدا کسی دیگر خالق نیست خب یه کسی که با دوغرویی یا نمیدونم میگن من که من خالق را قبول دارم همون ابو جهل است میگه من که خدایان یک طور خالق قبول دارم بدنا آیات ولی ولا ان من خلق السماوات و قبول داشتن سنگه خالق ها رو قبول داشته به با توجه به این تعریف خیلی هم مسلمان میشن دیگه نمیتونیم انکار بکنی برای اون کسی که نظر به غیر خدا میکنه قسم به غیر خدا میکنه نمیتونید چرا چون این شخص سوشید داره خدا را به عنوان خالقیت قبول داره مشکل زرکلی هست مشکل زرما در جنبه عبودیته چون کلمه لا اله لا تراتر از بحث اقرار به خالقیت همراه به خالقیت هم, هم هست یعنی اقرار داشته باشیم که خداوند معبود به حقه اینو ما مود داشته باشیم در غیر این صورت این تعریف بیشه ناقص بعضی اومدن گفتن خبر الله موجوده لا اله موجوده الا الله حالا بعضی ها بخاطب این که از قضیه اون قضیه چیش خارج بشن قضیه مثلا که شوید الهی موجود آله ها چون موجود زیاد بودن چون خداوند در قرآن میگه ما اغنس انهم آلهتهم آله ها موجود بودن اومدم یک قید و اضافه کردن گفتم که نه این لا اله موجود به حق این الا الله یعنی الهی موجود به حق نیست مگر الله یعنی الله هست که فقط معبود موجود به حقه یعنی بعض از رغبی ها هرچکه بعض از ها اگر این تفسیر کردن قصدشون این نبوده که اون قصدی که حلاج ابن عربی و ابن فارض و اینا داشتن اونهایی که از حلولی ها یا اتحادی ها که اومدن معنای موجود را در این کلمه یعنی خبر الله را موجود تفسیر کردن مقصدشون این بوده که هرچی در وجود میبینی خود خداست لا اله ها موجود الا الله هی ها یا همون وقتی قید اضافه کرد لا اله الا لا اله حق الا الله هیچ الهی حقه در حقیقت وجود نداره مگر خود خداست یعنی کی اون کسی که داو رو میترسه ابن عربی چی میگه میگه کی اون کسی که ما اون کسی که می فرقی نمی کنه که او را در نماد یک بوتی ببینه یا در نماد یک سگی اون سگ هم خداست چرا رسول خدا حل در مخلوقات لا اله موجود الا الله این چنین تفسیر کرده برای اینکه قران نقش این قضیه و و خداوند از از مشرکین نخ میکنه مثلا میگه اجعل الاله تا اله واحده این هذا لا شیء عجاب الها بودند مگر اینو مشرکین نمیدونن ایام صالح ابن عربی مگر مشرکین نمیدونستان که الها زیادند اگر کلام تو درست بود الها بها خب پس اون کسی که ابو جهل میفرستي به حق بود چون هر چیزی در در کل میبینید همش خدا است اون ابو جهل پس حق میفرستي که هر چیزی که بررسی میشه به حق خود خداونده اینجوری تفسیر بعضی بعضیا نقل میکنن قصه جلالالدین رومی مولوی صاحب اتات مسئله معنوی رو نقل میکنن قصه موسا و شبان که میگه که خدا کجا اشاره شبان میاد می بعد موسا میآید این قصه خرافاتی که هیچ اصل نه کتاب نه کتاب بنی اسرائیل از یهود گرفته نه اصل کتاب یهود داره نه اصل کتاب مسلمانا داره هیچ اصلی نداره این که بله که میاد انکار میکنه وقتی که میبینه شباب میگه ای خدا کجایی که موها را ببافم و فلان بکنم بعد میاد موسی میگه چرا اینطوری خدا را واس میکنی بعد موسی پش میده به اون طرف خدا ملامتش میکنه سازندگیش میکنه که بنده ای من رو از من رنجودی بذار بندم هرطوری که دلش دلش خاطر عبادت بکنه در تایید این قضیه که بله که هر کسی هر طوری خدا را میفرسه اون فرستشه درسته مهم اینه که اقرار به وجود خدا داشته باشه یعنی مهم عرفانه مهم معرفت خداست یعنی ایمان یعنی معرفت چه نقطه خدای خالق یعنی خدا را قبول داشته باشه کافیه دیگه آدم میخواد بترا را پرست میخواد قبر رو بترسه را برسه هر کسی میخواست صدا بزنه چون خدا در همه مخلوقات حله هر چیزی در وجود می‌بینی خدا خوداست حالا ها میگن خدا در من متحد شده من به درجه خدایی رسیدم که از عقیده اتحادیه هست و بعضی‌ها میگن هر چی در وجود می‌بینی خدا خوداست این فرق اتحادیه با حلولی‌ها هست که صوفیا اعتقاد دارن خودشون فقط اون کسانی که برای خودشون مورید و اتبا دارن شیخ طریقت میگه که من به درجه خدای رسیدم دیگه حلال و حرام به من مطرح نیست نماز می کنم روزه نمی به من حلال زنا حلال لواط حلال چرا؟ چون من به درجه خدای رسیدم من دیگه فنا شدم در خداوند این عقیده چیه عقیده اتحاد که خدا در من اتحاد شده همونطور که منصور حلاج میگه به بان تن میذاره میگه بله من حقم من خدا ام اون میبینی خدا خداست فرقی نداره با خود خدا خدا این ادعای صوفی ها بود که ما فناشتیم در خداوند ما به درجه خدای رسی این اتحاده شلود اینکه همه مخلوقات خدا رو عنوان یک روح در تمامی مخلوقات حل بشماری آیا اگر یعنی اگر این, اگر این حرف درست بود آیا پیامبران حق داشتن انکار بکنن رو ابو جه آیا موسیح حق داشت روی فرعون انکار بکنه وقتی که گفت انا رب بکومالعلا آیا ابراهیم حق داشت رو حق نه همه کسی خدا بوده پس همه بر حق بودن نمان کسی برگسی دیگه این کار میکن پس این قرآن این آیاتی که هست رد این اشخاصه که, که ادعای حلول خداوند در تمامی مخلوقات میکنن و وجود را وجود, خدا، وجود مخلوقات را وجود خدا میشمارن بعضی ها اصحاب حرکت های فکری سیاسی در عصر حاضر اومدن تفسیری را بر کلمه لا داشتن داشت یک تفسیری جدیدی نیست تفسیری که خوارج گذاشتن گفتم که لا اله الا الله ای لا حاکم الا الله هیچ حاکمی نیست جد خداوند یعنی هر یعنی بحث حکومتداریه اینی که حکم باید از آن خدا باشه مسلمان ها باید در راه رسیدن به حکومت تلاش بکنن باید این کلمه توفی چنین باید به نتیجه برسیم بکیه باید و حکم که کی میشه قانونی کی میشه قانون گزاری کی میشه قانون مندی کی میشه در تمامی حکومت ها از آن الله باشه بحث بحث حکم خدا در عبادتی نیست یعنی بحث عبادت رو در نظر نمیگیره فقط بحث طاعت چون مشر شرک نیت و ارادت داریم شرک طاعت داریم شرک محبت داریم شرک انواع شرک چون چه داریم ما اینها فقط شرک اومدن در یک خواستش کردم. اونم شکه در طاعت هر چند که لا حاکمه الله الحاکم خدا بند. این کسی که حاکمه به عنوان رب به عنوان مدبر اگر منظورشون لا حاکمه الله معنای همون خالقیت که خالق جز خدا نیست فرمان روای جز خدا نیست که این مشرکی نم قبول داشت لا مالکه الله هنم قبول داشت لا حاکم إلا به عنوان حکم کونی کسی که کونان تقدیم میکنه تدبیر الامر کسی که تدبیر امور میکنه کسی که بازو قرن و اگر معنای اگر اگر این حرفشون معنای حرفشون اقرار به اینکه که خداوند حاکمه اینکه جزی از اسماء صفات و به شکلی قبول داشتن این قضیه اما اگر منظورشون تشریعه در خب امور تشریعی ها امور تشریعی فقط در بحث طاعت نیست عبادت امور تشریعیه نماز خوندن روزه گرفتن غیبت نکردن تهمت نزدن همه اینها بحث تشریعات، تشریعات خداوندیه ما باید خداوند درش اطاعت بکنیم حالا میان چیکار میکنن؟ میان نه مقصود این آیات و این الحکم الا لله منظور حکومتا هست خطاب به حکامه و من لم یحکم بما انزل الله فأولتهم الكافرون و من لم یحکم ایو ای حاکم ای لم يحكم. میان تخصیصش میدن به حاکم اگر حاکمی دست دزقت نکر اگر حاکمی حکم خدا اجرا نکرد اون شخص کافره چون ح این حکم قانونی قانون قانون‌گذار خدا بنده فقط تختیج میدم به حکام ببخشید از کجای ای آیه گرفته شد و من لم يحکم بما انزل الله ای حاکم لم يحکم بما انزل الله اگر حاکم حکم بما انزل... از کجا گرفته شد از مفهوم آیه خیر مفهوم آیه در نمیده سیاست آیه ما بکنیم بکنی و من لم يحکم بما انزل الله فولاك هم الكافرون و هم الفاسقون و هم الظالمون شما داره ذره میدین شعر نزول آیه در یهو در حاکم یا محکوم در محکومین یهود ای یهود اگر حکم رسول الله را نپذیرفتید ای یهود شما اگر حکم شکبر رسول الله را نپذیرفتید سر تنه تحکیم به حکم رسول الله در نیورید نیورید نیمدید حکم رسول الله بگیرید شما کافرید شما ظالمید شما فاسقید بخاطر همین امام تبری میگه اینجا عبرت به عموم به عموم لازم نیست به خصوص سببه این آیات در شأن یهوده حتی که ما اینو نمیگیم میگیم عبرت به عموم لفظه چه میخوان یهود باشد چه غیر یهود؟ فلا وربک لا یؤمنون حتى یحكموک یحکمون یعنی تو را متحکم قرار بدن به تو بگردن در حکم محکوم یا حاکم یعنی اون محکومین بیان به تو بربگردن این آیات در شأن رسول الله کنیز نیست وقتی که حکم می‌کرد در شأن محکومینه این محکومین اگر حکم الله را نپذیرفتن چرا تخصیص میدی به حاکم فقط اگر حکم خدا را اجرا نکرد چرا نمیگیم محکومی که در حکم خدا را اجرا نکنه کافر اون کسی که شرک در تواعد داره مثلا غیبت میکنه مگر کسی مگر که از هوای نفسش، از شیطان تبعیت میکنه غیبت میکنه تهمت میزنه مگر تابع حکم خدا بما انزال الله داره حکم میکنه خیر بغیر ما انزال الله برخلاف اون چیزی که خدا خاصه خدا, خدا باید حکمش بر این بوده که چیز حرامه نباید از هوای نقش تبعیت بکنید نباید از شیطان تبعیت بکنید بحث حکم خدا من حکم عامیه. حال اگر کسی از حواهی نفس جمعیت کس غیبتی کس توهماتیزد حکم غیر خدا کس حکمش چیه حکمش اینکه گناهکاره فاسقه الا حد اکثرش حتی هرچند که ما حد اکثرش رو کفر اذیب داریم درسته توی شخص بگه حکم خدا به درد جامعه امروز نمیکنه حالا بعد امروز میگن که بله نه اون گناهکار وقتی گناه میکنه می دونه ولی بله حاکم نه میدونه قانون من خدابنده حاکم خداونده، ولی میاد قانون گذاری میکنه که دست دوت خرد نشه اون شخص قانون عوض کرده تعبیز قانون چون قانون عوض کرده کافره خب ببخشید میان که قرائن دلالت میده خب ببخشید شمایی که میگید قرائن نجاشی حقیق به معنزل الله کرده نکرد. عاجز بود نتونست حافظ نمیلت آیا با توجه به قرائن قرائ إذا لم يكن من المشركين برعليه اسمه ومسلمنا الله صلى الله عليه وسلم بعد عمر بن الخطاب خططه يا رسول الله منافق لأني أضرب العنقه رسول الله قال لا لا بعد يا رسول الله ما فعته ردة عن الإسلام أكبر ردة نقول ولا كفر بده ما بچی بود من مال داشتم من خانواده داشتم شما همه کسانی خانو... داشتید که از مال و خانواده تون دفاع بکنم من کسی نداشتم خواستم به دنیا خواستم از خانواده مونم دفاع بکنم فقطش فقط دنیا بود نه خفت ذلت مسلمانه از دین بردن مسلمانه به خاطر همین رسول صل الله صلی الله علیه و سلامinja حق بکی بده حق به خاطر میده مي میاد به نه یا وما ادراک لعلم الله اطلع على قلوب اهل بدر فقالوا اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم چی میبینی مثل ما مطمعه‌ای بیگانه درسته فعلش قبیحه و قرائنم دلولات میده که بر علیه مسلمانا نامه نوشته ولی که چون شاید یک عذر دیگه داشته باشه غیر از کفر ما باید به حرف خودش گوش بدیم و رسول خدا به حرف خودش طرفی هر هر چنکی حرف خودش هم زشته یعنی حق به خاطر دنیا نباید دینو میفروخت مسلمانا رو میفروخت به خاطر دنیا به خاطر خانوادهش کل مسلمانا رو نمیفروخت نباید این کارو میکن. فعلش قبیحه که احتمال کفر از هم داشت ولی که ما حکم بدیم بر اساس قول خودش و نمیام حکم ردت را بدیم با بر اساس قرائنی که دلالت میده این برعایه مسلمانه قرائن دلالت این میده ولی که چون شاید مخرج داشته باشه شاید یک مخرج براش پیدا بکنیم یک عرضی براش, براش پیدا بکنیم یک توجیه همونطور خود توجیه داشت و الله صلی علیه وسلم بهش عذر به خاطر همین عیمه چی میگن. اعمان و ماشد فقط غفر الله لکن میگه اگر شرک اکبر بود خدا نمی بخشید ان الله لن اخبران یوش رکبه و اخبرو مدونه, مدونه ذلك لمن یشا اگر اینجا فعل حاطبه شرک اکبر بود هیچ وقت خدا اونو نمی بخشید بس شرکتی مرتکب شده اینجا نفاقی مرتکب شده حاطب نفاق اکبر نیست قصش این نبود حالا شکام انکار انجام بینه ایا واقعا من یقین داریم که کاششون و اینه که حکم خدا به درد جامعه امروز نمیخوره ولی میگم بله لازمش اینه نه لازمش این نیست شاد میترسن شاد مکرهم شاید, شاید, شاید نمیگینم برای خودت بهانه‌ای دیگه آیا شما چه نیدید رسول خدا میگه با کفر بواه ببینید باید بگید آشکرابیات حرف بزن نه که بگید با قرائن من حق میدم هیچ وقت حق با قرائن نیست پس این تفسیر خلاص حرف این حرفه اینه که این تفسیر لا حول که الا الله یه تفسیر اشتباه هست ف... اولا اول تفسیر اشتباه هست که برخلاف آیات قرآن. آیات قرآن دعوت انبیا به تیر عبادت، مده. عبودیت. أن لا إلا الله تعبد ایلا الله. این سریع در آیات قرآن. مطاعتم جزی از عبادت نه کل عبادت. اطاعت خداوند جزی از عبادت. جزی از عبادت هرچند که اینها میان همین جز هم جزش میکنن محکوم را درش خارج میکنن یعنی مردم را ازش خارج میکنن خاص حکم حاکم اگر نیمت حکم خدا را اجرا نکرد دلیل شما برخاص کردن چیه؟ آیا قرآن عام نیست نگه با من نمیحکم به معنز الله آه عامه هرکسی حکم خدا را نکرد کسی حرف اطاعت از حرف خدا نکرد اون کافره چرا خاصش میکنید؟ میگن اونها تاغوتن مر... مردم ازش پیروی میکنن بله شیخ میتونه طاغوت باشه میگه خداوند نمیگه در احبار هم و هم اربابا من, من دون الله ای حرکت الشیخی در دلیل حکمی آیا اون شخصم میشه کافر پس همه اتباع مذاهب را کافر بکنیم چون هیچ مذهبی نیست که درش الله قول پیدا نکنیم که مخالف حدیث باشه این تنبیه این حکم برخ و جرم اشتباه خصوصا که ما گفتیم یعنی این لا حقم الا الله یه جنبش بحث خالقیت، یک جنبه دیگر بحث فرع عبودیت. این تفاثیری که شده و این خلاصه ردی که ما بر اینها داریم الان اینجا بحث امشب و خاطبه میدیم پس اینجا معلف وقتی که میگه معنای کلمه لا اله الا الله لا به حقیق با توجه به این عدلله ها از قرآنه، که ما گفتیم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدن ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله وينبأ الطواف فالمديح خدا بال لقد أرسل أنوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره الفلا مرا كتاب ورحمة آيات ثم فصلت من لدن حكيم خبير اللّا تعبدو إلا الله بين آيات ميات تحصير مكن شهد الله أنه لا إله إلا هو بلا معبد بحق إلا الله وهم كذبوا فالمديح ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شرك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه هم تلك القدران شرك دار مل نظرك قل إن صلاة ونفسك ومحيايا ومماتي لله رب العالمين أبل قسمة ألوهيات إن صلاتي ونفسك نمازا رزاء توحيد ألوهيات كي لازمه توحید الوهیتیه اقرار به اقرار به ربوبیت و محیای الوماتی لله رب العالمین، اقرار به عبودیتش پس لازمه لا معبود به حق اینی که اقرار, این اقرار داشته باشیم که خالق جز خداوند نیست این لازمهشه همونطور که خداوند در ملکش در خالقیت شریکی نداره همونطور هم در عبودیت نباید ما شریک برای خداوند قائل بشیم واخر دعوان الحمد لله رب العالمین الله و علی محمد